اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین به نام خداوند بخشنده بخشایشگر یاسین والقران الحکیم سوگند به قرآن حکیم این لكلمن المرسلین تو قطعاً از رسولان خداوند هستی علی بر راهی راست تنزیل العزیز الرحیم این قرآن است که از سوی خداوند عزیز و نازل شده است لتنذر قوما ما انذر بهم فهمغافلون تا قومی را بیم دهی كه پدرانشان انظار نشدند از این رو آنان قافلند لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فرمان ؤمنونفرمن در بیشتر آنها تحقق یافته به همین جهت ایمان نمیآورند این جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الأذقان، فهي الى الاذقان فهم مقمحون ما در گردن های آنان قلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است وجعلنا من بين ايديهم سددا و من خلفهم سددا فاغشيناهم فاغشيناهم فهم لا يبصرون و در پشت روی آنان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان صدی و چشمانشان را پوشانده ایم لذا نمیبینند و عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون برای آنان یکسان است چه امزارشان کنی یا نکنی ایمان نمی آبرند اینما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر و فقط کسی را انظار می کنی که از این یادآوری الهی پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان بترسد چون این کسی را به آمرزش و پاداشی پر ارزش بشارت ده اینا نحن نحی موتا و نکتب ما قدموا و و شيء في امام مبين. به یقین ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از پیش فرستاده اند و تمام آثار آنها را می نویسیم و همه چیز را در کتاب آشکار کننده ای برش مردگین. و لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاء المرسلون. و برای آنها اصحاب قریه آن را مثال بزن. هنگامی که فرستادگان خدا سوی آنان آمدند. إذ ارسلنا الله إليه فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا انا الیکن مرسلون هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم اما آنان رسولان ما را تکذیب کردند پس برای تقویت آن دو شخص سومی فرستادیم آنها همگی گفتند ما فرستادگان خدا به سوی شما هستیم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شیء إن انتم, أنتم إلا تكذبون اما آنان در جواب گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل نکرده شما فقط دروغ میگویید قالوا رسولان ما گفتند پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً فرستادگان او به سوی شما هستیم وما علينا الا البلاغ المبين. و بر احده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست قالو اینا تطیرنا بکم لئن لم تنتهو لنرجمندکم و لیمسندکم من عذاب علیم آنان گفتند ما شما را به فال بد گرفت و اگر از این سخنان دست بر ندارید شما را سنگسار خواهیم کرده و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید قالو معكم ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. رسولان گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید بلکه شما گروهی کارید. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال قال يا قوم اتبعوا المرسلين ومرد با ایمان از دورترین نقطه شهر با شتاب فرار رسید گفت ای قوم من از فرستادگان خدا پیروی کنید اتبعو من لا يسألكم اجرا و هم مهتدون از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمیخواهند و خود هدایت یافته اند و ما لیا لا اعبدالذی فطرنی و ایلیت من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده وهمگی به سوی او بازگشت داده میشوید اتخذ من دونه اله تن ان يريد الرحمن ان يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا نجات نخواهند داد ضلال مبین. اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود اینی... آمنتو بی ربکم فاسمعون به همین دلیل من به پروردگارتان ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهید قیل دخول الجنه قال یا لیت قوم یعلمون سرانجام او را شهید کردند و به او گفته شد وارد بهشت شد گفت: ای کاش قوم من میدانستند دانستند بیما ربی و جعلنی من المکرمین که پروردگارم مرا آمور زیده و از گرامی داشتگان قرار داده است و ما انزلنا علا قومهی من بعده من من يرسم كنا وما كنا منزلين و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم و هرگز سنت ما بر این نبود این كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون بلکه فقط یک سیخه آسمانی بود ناگهان همگی خاموش شدند یا حسره علی العباد ما یاتيهم من رسول الا كانوا افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استحض می کردند میارم کم اهلت قبلهم من القرون انهم ان هم ایم لا یاروجی آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان را به خاطر گناهانشان حلاق کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیگردند و زنده نمیشوند؟ وَإِن كُلُّ بجميع جَمِيعُ لَدَيْنَا محضرون و همهی آنان روز قیامت نزد ما احزار می شود لهم الله الأرض الميتة أاخناها وخرجنا منها خبّ وخرجنا منها حبّ سه منه زمین مرده برای آنها آی ما آن را زنده کردیم و دانه‌های های از آن خارج ساختیم که از آن می‌خورند. وجعلنا و فيها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العيون. و در آن باغهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه از آن جاری ساختیم لی کلو من سمری و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون تا از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان هیچ دخالتی در ساختن آن نداشته است آیا شکر خدا را به جا نمی آبرند؟ سبحان الَّذِي خلق الأزواج كلها مِنْ بَاتٌ بِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ اَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ منظه هست کسی که تمام زوجها را آفرید از آن چه زمین می و از خودشان و از آن چه و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فا هم مظلمون شب نیز برای آنها نشانه ایست از عظمت خدا ما روز را از آن برمیگیریم گیریم ناگهان تاریکی آنان را فرا میگیرد و الشمس لمستقر لها ذلك تقدير العزیز العليم و خورشید نیز برای آنها است که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است این تقدیر خداوند قادر و داناست و القمر قدرناه منازل حتی عادک العرجون القدیم و برای ماه منزلگاه های قرار دادیم و هنگامی که این منازل را طی کرد سرانجام به صورت شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولل لیل و کلون فی فلکی یسبحون نخرشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی میگیرد و هر کدام در مسیر خود شنابرند و آیت لهم انا حمل ذریتهم فی الفلک المشحون دیگر از عظمت پروردگار برای آنان این است که ما فرزندانشان را در کشتی پر از وسایل و بارها حمل کردیم و خلقنا لهم من ما برای آنها های دیگری همانند آن آفریدیم و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم به طوری که نفر یاد رسی داشته باشند و نه نجات داده شوند مگر اینکه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معینی از این زندگی بحره گیرند و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایلیکم و ما خلفكم لعن ترحمون. و هرگاه به آنها گفته شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید، اعتنا نمی کنند وما تأتيمِن آياتم مِن آيات رم إِلا كانواعََّ مارضين و هیچ آی ای از آيات پروردگارشان برای آنها نمیآید مگر اینکه از آن رود گردان میشوند وإذا قلَهُم م فقومم ب رزقَهُم اللهم قالَّنَ كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين رحمگامی که به آنان گفته شود از آنکه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید کافران به مؤمنان میگویند آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا میخواست او را اطعام میکرد شما فقط در گمراهی آشکارید و یقولون متى آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چی خواهد بود؟ ما ینظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم هم يخصمون. اما جزین انتظار نمیکشند کشند که یک سیحه عظیم آسمانی آنها را فراگیرد در حالی که مشغول جدال در امور دنیا هستند فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلیم يرجعون چنان قافل گیر می که حتی نمی توانند وسیعتی کنند یا به سوی خانواده خود بازگردند و نفخ فی الصور فإذا هم من الاجداث الى ربیم ينسلون بار دیگر در سور دمیده می شود ناگهان آنها از قبر شتابان به سوی دادگاه پروردگارشان میروند. روند قالوا یا ویلانا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون میگویند ای وای بر که کسی ما را از خواب گاهمان برانگیخت آری این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان او راست گفتند این كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع محضرون واحدی بیش نیست فریادی عظیم برمیخیزد ناگهان همگی نزد ما میشوند. می شوند. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. و به آنها گفته می شود امروز به هیچ کس ذره ای ستم نمی شود و جز آن که را عمل می کردید جزا داده نمی شبید. این اصحاب الجنه اليوم فی شغل بهشتیان امروز به نعمت‌های خدا مشغول و مسرورند هم و ازواجهم فی ظلال على الارائك متکئون آنها و همسرانشان در سایه های قصرها و درختان بهشتی بر تخت ها تکیه زده اند لهم لهم ما يدعون برای آنها در بهشت میوه بسیار لذت است و هرچه بخواهند در اختیار آنان خواهد بود سلام قول من بر آنها سلام و درود است این است. از سوی پروردگاری مهربان و امتاز اليوم ایوه المجرمون و به آنها میگویند جدا شوید امروز ای گناهکاران الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاریست و ان اعبودونی هذا صراط مستقیم و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است ولقد أَضَلَّ منكم جبلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تكونوا تعقلون او گروه زیادی از شما را گمراه کرد آیا اندیشه نکردید؟ هذه جهنم التی کنتم توعدون این همان دو است که به شما وعده داده میشد شد اصلاوه اليوم بما کنتم تکفرون امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتی به آتش آن بسوزید. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا و وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن میگویند. و پاهایشان کارها را که انجام میدادند شهادت می دهند. نشاء على فاستبق الصراط لا و اگر بخواهیم چشمانشان را محو می کنیم، سپس برای عبور از راه میخواهند بر یک دیگر پیشی بگیرند. اما چگونه میتوانند ببینند ولون شاء لمسخناهم علی مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما و مضيا ولا يرجعون و اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ میکنیم و به مجسمه هایی بی روح مبدل میسازیم تا نتوانند راه خود را ادامه دهند یا به عقب برگردند ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش باشگونه اش آیا اندیشه نمی کنند؟ و ما علمناه الشعر و ما ینبغیله این هو إلا ذكر و قرآن مبین ما هرگز شعر به او پیام بر نیاموختیم و شایسته او نیست شاعر باشد این کتاب آسمانی فقط ذکر و قرآن مبین است لینذر من كان حی و القول على الكافرین تا افرادی را که زنده اند بیم دهد و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنان مسلم کردند آیا ندیدند که از آن با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند و ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون و آنها را رام ایشان ساختیم هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می‌کنند ولهم فیها منافع ومشارب افلا يشکرون و برای آنان بحرهای دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنیهایی گوارا آیا با این حال شکرگزاری گذاری واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون. آنان غیر از خدا معبودانی برای خیش برگزیدند به این امید که یاری شوند لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند و این عبادت کنندگان در قیامت لشکری برای آنها خواهند بود که در آتش دوزخ احضار می شوند فلا یحزنك قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون پس سخنانشان تو را غمگین نسازد ما آنچه را پنهان میدارند و نچه را آشكار میکنند میدانیم اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين آیا انسان نمیداند که ما او را از نطفه‌ای بی‌ارزش آفریدیم و او چنان صاحب قدرت و شعور و نطخ شد که به مخاصمه آشکار با ما برخاست و ضرب لنا مثال و نسی خلقه. قال می‌یوحی العظام و رمیم. و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند در حالی که پوسیده است؟ قل دارد. قلیوحیالذی اشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم بگو همان کسی آن را زنده میکند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا انتم فاذا انتم منه توقدون همان کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش میافروزید. اولیسا الذی خلق السماوات والارض من قادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید نمیتواند همانند آنان را بیافریند آری، میتواند و او آفریدگار داناست. اینما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون. فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن میگوید موجود باش. آن نیز بیدرنگ موجود می‌شود. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ پس منزه هست خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او باز میگردانند